مطالبی را که در هفته های قبل از کرده بودیم اجمالش که خیلی خیلی مختصره این بود که به مقتضای آیات کسیری قرآن هیچ کس حق ندارد برای خودش ولی و آقایی انتخاب کند آقا و ولی منحصر است به خدای تعالی. لکم من دون الله من ولی اتخذ من دونهی اولیاء والله و هو الولی پس بنابراین چیزی را انتخاب کنم من و برای خودم آقا قرار بدم و برای خودم ولی قرار بدم و هر دستوری که میده گفته او را اطاعت کنم این کار بر دستور قرآن ممنوعه لکم من دونهم من ولی و لا یشرک فی حکم هی احدا هم قانونگذاری مختص به خدای تعالی و هم ولایت و احقای مختص به خدا اگر کسی بخواد ولی کسی باشد بر دستور قرآن، بر طبق دستور قرآن باید با تعیین خدای تعالی باشد خدا تعیینش کرده باشد بفرماید ان نبی و اولاب من انفسهم، بفرماید انما ولی الله و رسوله والدین آمنال لقین قیمون از ثلاث و یاتون از و هم راکمون و امثال اینا مال زمان حضور در زمان قیبت هم فقیه عالم فقیه عادل را ولی قرار بده هم ابن این اگر کسی در زمان حضور پیروی می کند از پیغمبری امام و اگر در زمان بعد پیروی می از فقیش این در حقیقت منشه از ولایت خدایه تعالی چون خدایی رو ولی قرار داده پس پیروی کردن از و عمل کردن به گفته ای در حقیقت عمل کردن به گفته خدای تعالی و هم ماقیر از اگر خدای تعالی کسی رو ولی قرار نداده باشد اهدی حق ندارد برای خودش ولی انتخاب کنه نه از می اینکه به این نه دست جمعی جمع بشن یک کسی رو بر خود ولی انتخاب کنه مگه اون دست چون یکی از رفاقای شب پرسید حالا من یادم افتاد تذکر بدم مگر این این دست جمعی و ری دادن و انتخاب کردن باز به دستور فقیه باشه اگه به دستور او باشه خود نداره باز در حقیقت برگشتش به امر او و اما پیش خودی میخوام جمع بشیم ما هم دیگه یه نفر رو ولی برای خودمون انتخاب کنیم نه این کار شرعا ممنون این مطلب اول ما بود که ارز کرد. مطلب دومی که ارز کردیم اجمالا دیگه اون چرا که به حسب از میشود این که تجربه و از مطالب واضح هست که هیچ امتی و هیچ گروهی و هیچ جمعیتی باقی نخواهند بود بدون سرپرست. یه نفر میخواد که اینها رو در امور اینها رو اداره کنه و اینها رو جمع کنه و اختلافات اینها رو حل کنه و دعواها و نزاخ ها رو خاتمه بده و خلاصه بدون سرپرست هیچ جمعیتی باقی و برقرار نخواهد و این مطلب روایاتی داشتیم و روایاتش رو خوندیم و گذشته هست بنابراین اون مطلبی را که عرض کردیم این بود خلاصه رسول واس آقا این دین کدائی که در تمام کوچکترین شعور انسان از اول ولادت بلکه قبل از ولادت دستور داره تا بعد از مردن تمام ریزای زندگی انسان دستور داشته باشه و برای این امر به این اهمی که تمام سعادت دنیا و آخرت انسان بستگی به یک حکومت صالح داره ای رو چیزی در نگفته باشه اینو رو گذاشت و رفت پیغمبر درباره ای چیزی نفرمون گفتیم این مطلب نشده نیست؟ و شواهد و قرائن و قصه ها و غیر که برای مطلب ذکر کردیم و اینم مطلب دو مطلب که ارز کردیم در زمین چند شب ارز کردیم که ما امام را فقط و فقط برای زعامت و اداره امور دنیا نمیخوان زعامت و امور و دنیا و جامعه مسلمین یکی از کارهای امامه نه کار منحترشه یکی از کارهاشه. و اساسی ترین کارهای امام دلالت کردن و هدایت کردن مردم به سوی سعادت و به سوی کمال معنوی و اون کاری را که پیغمبر از او ساخته است این دین همونطوری که حدوسش احتیاج به نبی داره و دستور از جانب خدا میخواد بقاش احتیاج به یه سرپرست داره انحرافات فکری که پیدا میشه تعویلات غلطی که میشه ندانسته و یا دانسته مطلب و آیات و روایات را برخلاص اون را که در واقع است برش میگردونن اینا یه نفر مرجع میخواد که این شخص مرجع در که این مطالب باشد و مرجع برای رفع اختلافات باشد روایت حشام و اون مباحثاتی که از رو هم به مناسبت این مطلب ذکر کردیم این هم مطلب دیگری بود که ارز شد مطلب دیگری که عرض کرده بودیم این بودش که ما در امور دینیم مطالبی را رسول الله صلی الله علیه آله بیان نفرمود از دنیا را فرصت بیانش نبود مورد اطلاع نبود مورد حاجت نبود که بیان کند هم نسبت به امور اعتقادیه و هم نسبت به احکام اینا باید یه مبین لازم داره و این مبینش باید امام باشد و بایستی معصوم شد از جانب خدای تعالی به وسیله رسول الله صلی الله علیه و آله احکام بر چه یک طرقی که الهمون طرقهشو بلد نیستیم که چجوره الله علی رسول الله صلی الله علیه و آله و باب من العلم ينفته من كل باب الف باب یه میلیون در علم بر روی رمن المومنین باز شده که با این علم تمام حوادث و تمام وقایه و تمام مشکلات دینی که برای هر کس در هر شرایطی پیش آمد کند او بلد حکمش و بلد رد احل رو و بلد وظائفش رو منابراینی هم که شخص ما لازم داریم که این دین نه فقط یک دینی بود که با از سال و 15 سال و 23 سال خاتمه پیدا کرد این دین که تا ابد باید باقی باشد و هر روز و هر زمان مطابق شرایط روز مطابق شرایط اشخاص مطابق درک و فهمهایی که هر روز رو به تکامل است این متشابهات قرآن رو چی باید بیان کنه خدای تعالی مذرمد ولا یعلم و تعویله الا الله و راسخون نفل علم اینه ایچی باید معلی کنه این اکثر آیات قرآن که هی تعویل لازم داره و بیان لازم داره و توضیح میخواد خود قرآن مذرمد آیات و محکمات و نعمل کتاب و اخرم و تشابهات فا اما الذین مثی قلوبه همزیغان فا یکتا به اون ما تشابه همه اینکه دلشون انحراف داره متشابهات رو پیروی میکنن این متشابهات مجمل است و مرادش رو دیگران نمیدانند اینو کی باید تعیین کنه این پیغام از اون به اینکه بعد از رسول الله یه فردی ما لازم داریم که دینمون رو نگهداری کنه متشابهات رو تعیین کنه احکام و وظایف تعیین نشده رو تعیین کنه این و برداشت های که دیگران میکنند، معین کنند، ما این کنن. ما اینا رو تا اینجا تقریبا با تفصیل بیشتری و توضیح و مثالها و روایات وارده عرض کردیم رو گذاشته این تا اینجا تمام شد خطلب این که میخوایم عرض بکنیم این مطلب است که چون که همه الان عرض کردم اگر خدای تعالی فردی را به عنوان ولایت تعیین بکند و بگوید رسول الله صلی اللہ علیه وآلی ولیگ شماست الذین مثلا یعنی اتون از و هم راکعون یعنی امنی و ولیگ شما کسی رو تعین بکند این ولایت ای در حقیقت تعین شده از جانب خداست و تیروی از ای اطاعت از خدا این مطلبی بود که الان از کردن خب اگر این مطلب این چنینه خب یه آقای به من میگه خدا به وقت یه فردی رو تعیین میکنه مثلا فرض کن به گفته شما ها امیر سلام الله علیه رو تعیین میکنه خب این تعیین امیر المؤمنین تعییم خدا هست پیروی از او پیروی از خدا هست اون حرفی نیست ولی کن یه وقتی هم یه راه تعیین میکنه اگه راهی تعیین کرده باشه و ما از اون راه بریم و خلیفهی بر طبق اون راهی که اون معین کرده تعیین بکنیم باز برگشتش به تعیین خدا و خدای تعالی در قرآن راه معین کرده یا نه؟ و اون چی اون راه فرماد الذین از تجاب و اقام و عمر هم شورا بینه صد رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فضن غلیز الغلب لن فض من حولک فعف عنهم و لهم و شاورهم فی هم به رسول الله دستور داده شده که در کارها با مردم مشورت کن و هم یک صفت بارز مؤمن رو ذکر کرده که مؤمنین این چنین افرادی هستند که اجابت می‌کنند دعوت خدای تعالی را و نماز را اقامه می‌کنند و امور امورشون را با شورا اصلاح می‌کنند و امرهم شورا بنهون و من رزقناهم من خب بنابراین امورمون رو باید به دستور قرآن بر طبق شورا عمل کنیم. حالا مسلمان ها مشورت کردن یه نفر رو تعیین کردن آیا این تعییمی که کردن؟ این تعیین تعیین خدایی نیست؟ خدا گفته بکنیم این کارو اگر بنا شد امیر رو تعییم میکرد شما گفتید اطاعت از امیر اطاعت از خدا چون خدا تعییم کرده؟ حالا هم اگر شورای فردی رو تعیین کرد، اطاعت از این فرد، اطاعت از چون به تعیین دستور خدا تعیین شده. پس بنابراین چه فرمون کنه؟ ما این مطالب به شما رو ما قبول داریم، ولی که دستور اینه که شورا کنید و تعیین کنید خودتون خلیفه رو. ما خودمون تعیین کنیم و. فرد بخلماید مثلا از می کنم عوی رو هم با شورا تعین کردن بنابراین خلیفه مسلمینه به وقتی تعین شد بر همه اعتاعتش واقع این مطلبی ای که از می شود به اینکه که مطلبی ای که اولا باید ارز کنیم این است که این آیه شورا که می و امرهم شورا به هم این در چه کارهاییه که کارهاشون با مشورت میکنن و انجام میدن هر کاری بسید حالا بشینیم مشورت کنیم امرو نماز بخونیم یا نه این امروز مشورت کنیم روزه بگیریم یا نه باقی نمیدونم کجا بود یه مملکتی بود مملکت های نمیدونم کی بودش و این از چهاعتتم بود بود کی بود این مراکش, ال... الجز... نبود. مراکش بود یا الجزار ن مراکش بود و اون یکی تونست بود هم نیست. اینا رأی داده بودم مجلس که امسال هوا نمیخواد روز بگیرن که نمیخواد روز میخواد روزه میگین از زیات اقتصادی این که روزه میگیرن حال ندارم کار کنن و این به اقتصاد مملکت به میخوره نمیخواد روزه بگیرن. این هم قانونی قانون کرده بوده نمیخواد ور بده. خب حالا اینم قانونی، حالا امر شورا به اینهم اینو میگه، میگه در هر کاری مشورت کنین و اگر مشورت کردید نافذه، اینو میخواد بگه. یا نه در اون کارهایی که دستور خاصی از جانب خدای تعالی نیامده. در اون کارهایی که دستور و وظیفه خاصی معین نشده، برای تعیین وظیفه و تعیین راهتون که نمیدونید چیکار کنین، مشورت پس بنابراین مطلب اولی که باید ارز کنیم اصلاً موضوع شورا و موضوع مشورت بر طبق آیه شریفه در جایی که وظیفه خاص از جانب خدای تعالی ما شده باشه در اونجا جا جاش نیست. اون جایی که وظیفه خاصی نداریم و معتل میمانیم و متحیر میمانیم و نمیدانیم چه بکنیم مشورت رسول الله سواله کجا خودش مشورت میکرد؟ که فرمود و شاور هم فلان دستور داد به رسول الله که ما شو مشورت کن فیغمبر کجا مشورت میکرد با مردم؟ اون چرا که شاید توی کتاب ها موجوده در مورد جنگ ها خیلی مشورت میکرد؟ فرمود اشیر رو الای روی بگید چیز رو نمیدونم چی کنیم؟ نمیدونم الان دقیقا نمیدونم ارز کنم که جنگ بعد بود یا در جنگ اخد بود با مسلمان ها مشورت کرد که چی صلاح میدونیم که آیا بریم از شهر بیرون یا ما تو شهر باقی بمونیم و از همین خانه ها و از پشت بام ها و اینا دفاع کنیم شاید در دهنم این باشه که پیر مرده گفتن بل همینجا خوبه تو شهر بمونیم و بمونیم تو خونه ها از همین پشت بام ها سنی میزنیم تیر میزنیم جوانها گفتن نخ با این خلاصهش به تغییر بنده البته نمیدن تو روایت چیه این دفاع دفاع زمانه هست خلاصه مردونه میدون بیرون شرک چیه باید درسته پیغمبرم سا واله واله همین رعی رو را انتخاب کرد و رفتن پیخون و در جنگ خندق شاید همین معروفه که در جنگ خندق مشورت کرد تمام احزاب قرش با هم هم شده بودن چه بکنیم با سلسلمان رعی داد که ما در شهرمون وقتی یک کسی روحی میخوان حمله کنن اطراف آبادیمونو خندق میکنیم بگنگرم این رو خندق کندم. خب اینجور کارها رو مشورت میکنیم بنابراین موضوع مشورت در آیه شریفه که خدای تعالی صفت مؤمنین را به عنوان مشورت ذکر میکنه نه مشورت در اون جایی که خدای تعالی خودش وظیفه رو معین کرده که این کار باید بکنی وقتا مشورت کن که دستور من عمل بکنی یا نه؟ معنی داره خدای تعالی خودش وظیفه رو معین کرده که این کار رو باید بکنی باید مشورت مشروعات کن آیا به دستوری که من دادم عمل کنی یا نکنی معنی نداره پس اون جایی که دستور خاص وارد شده اصلا از موضوع مشورت خارجه اون مطلب که بعد از این که معلوم شد اونو حالا هنوز وارد نشدیم بعد انشاءالله باید عرض کنیم اگر بنام شد که ما توانستیم مطلب رو که انشاءالله می توانیم ثابت کنیم که خدای تعالی امیر المؤمنین سلام الله علیه رو برای این کار معین کرده و یه مطلب اختیاری حتی اختیار رسول الله و و نیست که به میل خودش پیغمبر یه فرد دیگر رو میتونست انتخاب کنه نه اینجوری نیست مکرر در مکرر حوادث متعدده برای پیغمبر اتفاق افتاده است اولین حادثه ای که اتفاق افتاد شاید قضیه عرض میشود به این که اول به که اون بند خدا انجر عشیرتی که الاغربی نست بند خدا های, بند خدا های خبر کردن و آبگوش دایگه کردن و آنچه بعد فرمود من پیغمبرم و هر کسی یا اولین کسی که با من بیعت کند او از جانب خدا وسیع من و خلیفه منه این بند خدا ها میگن شیعه زمان شعباز پیدا شده شیعه اول اول بسم الله شیعه پیدا شده اول بسم الله که اون روزی که هنوز دعوت پیغمبر دعوت عمومی نبوده انظر عشیرت کل الاغربین بوده از هم وقت شیعه پیدا شده از همون اول بسم الله اون وقت یکی میگه شعباز درستش کرده یکی میگه نمیم کی درست کرده از این لا تا ها به هر حال مقصود از بنده این است مکرره در مکرره تو روایات داره ولی من چه چمچم نمیشتم می اومدن خدمت پیغمبر و از میکردن یا رسول الله ما با تو بیعت میکنیم قبل و اشائرمون جنجو هستن میاریم به کمک تو ولی بعد از تو ام در دست ما باشه حضرت فرمود این کار کاری نیست که به دست من باشه این رو خدای تعالی باید تعیین کنه و خدای تعالی, تعالی, تعالی تعیین کرده دست من ولی زا اینا منصرف هم با پیغمبرم اسلام نمیوردن و بیعتم نمیکردن میرفتن مکرر در روایات ما موجود از اینه که خیال نکنید که ما میتوانیم یه فردی رو به عنوان امام تعیین کنیم به اختیار خودمون که مثلا از میکنم حضرت باقر سامون و هلک میتونست به اختیار خودش غیر از استاده به فرد دیگری رو تعیین میکرد این خیال رو نکنید شما اینها معین معیم شده از جانب خدایه تعالی خب حالا این مطلب رو هنوز و بحثش رو وارد نشدیم این الان به قول خودمون به قول طلبه ها داریم امامت آمه رو بحث میکنیم امامت خاصه حالا باشه صدیجا خودش تا برسیم بهش انشاءالله الان صفات امام و تعیین امام بر عهده خدایه تعالیه است و صفات امام چیست تو این خصوصیاتی که در امام بنوان آم موجوده بنابراین اگر ما در بحث آینده که انشالله اگر زنده موندیم و بحث کردیم که تعیین شده است این به خصوص بنابراین جای شورا دیگه یعنی شورا اگر باشد در جایی باید باشد که وظیفه خاصی از جانب خدای تعالیم اگر نشده باشد ولی اگر وظیفه خاصی معین شده، الاست اولا بكم من انفسكم فمن كنتم اولا فعلي مولا من معین شده از جانب خدای تعالی هستم و علی هم به جای من خدا معینش کرده بنابر معنی نداره که رجوع به شورا کنیم از اول بنده این شدش که شورا در اموری که تعیین وظیفه خاصی از جانب خدای تعالی نباشد و اگر امامت یک وظیفه خاص و منصب خاص معینه از اندالله تعالی چون اون که حس و بعدن انشاءالله از خواهیم کرد جایی برای شورانی اینو بذار کناری. مطلب اول ما باشه کنار مطلب ثانی مطلب ثانی است که خب حالا خدای تعالی فرموده مؤمنین امرشون رو با مشورت انجام بده مشورت میکنین که چیکار کار کنم آیا مشورت کردن؟ تمام مسلمان های آلم باید بیشینن مشورت کنن و خلیفه تعیین کنن و امام تعیین کنند یا بزی میپرسیم دیگه آن خب آخه این کار یه وقت ما مشورت میکنیم مثلا فرض ببرمهید که دور این شهر رو مثلا تو این شهر رو لوله بکشیم یا نه لوله گاز بکشیم یا نه خب این مربوط به این شهره و اما امامت مسلمین مال همه مسلمین آلمه تمام مسلمان عالم آلم بشینن با هم دیگه بدن و نظر بدم این مثله اگر این باشه که اولا باید فاتحه ی عبی برک رو خوند اگر مشورت باشه اگر راست باشه اگر راست باشه مشورت که نیست ولی اگرم راست باشه چند نفر شرکت کردند و مشورت کردن و انتخاب کردن بابا ی عبی نوشته بود برای پسرش که شده تو خلیفه شدی کی تو رو خلیفه کرد؟ او جواب نوشت که چون من سابقه بیشتری داشتم و پیرمهتر بودم اونو. چی بودن؟ من انتخاب کردم بودش من که تو پیرمهترم من از تو من انتخاب نکردم هیچی. پس بنابراین آیه شریفه میگه امرشون رو با مشورت انجام میدم آیا شرایط این مشورت چیست؟ تو آیا چیزی مذکوره؟ تمام مردم باید رأی بدن؟ مکرر این کلمه رو ملاحظ میکنم مکرر در مکرر اتفاق افتاد. مردم خارج مدینه، مردم نشعر نمی‌شود فقط از عربستان سعودی، مردم خارج مدینه و مردم خارج از جزیره العرب، اخه یمنم در زمان رسول او صلی الله علیه و, و مسلمون بودن؟ تنها هم مسلمان بودن ادهی از, بر... از شاید جاهای دیگه بودی بوده که من بلد نیستم خارج شهر مدینه من میوادم مدینه بین یا آقای خلیفه شده خب اینها همهشون یا اکثرشون در قضیه قدیر حاضر بودن این چیه دیگه؟ همه با تعجب برخورد میکنن که این آقا کیه و اینو کی اینجا گذاشته؟ بنابراین غری اطلاع نداشتن از قضیه خب این چه مشورتی بود قضیه تاریخات پیدا کرد حالا ما به شخص اون آقا کار نداریم بحث ما این است که امرهم شورا بینهم آیا باید تمام مسلمان ها اتفاق کنند و مشورت کنند در مصلحت یا بعض اون بعض هم کی باشند شرایطش چیه و به قول خودمون شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده چیست؟ چی حق داره که شور کنه و مشورت کنه و انتخاب کنه و چه شخصی رو جایز است که انتخابش کنه ابدا یه دونه روایت شما بخواد پیدا کنید که شرایط انتخاب کنندگان رو گفته باشه آیه که نداریم چی روایت هم نداریم شراعت انتخاب شوندگان چه کسانی رو باید انتخاب کرد البته در روایات شیعه شرایط امام رو بیان کرده ولی شرایط انتخاب کردن این آقایون که بیشنن جمع جنبشن و انتخاب کننده انتخاب کنند کسی را شرایط او چی باشه نه روایاتی و نه آیه‌ای راجع به شرایط انتخاب کردن و کننده نه روایت و آیه‌ای راجع به شرایط انتخاب شده هیچ کدومش موجود نیست و اگر این مطلب بنابشه به انتخاب بشه مگر در کارهای خودمون نمیبینیم هر کسی یک کسی رو انتخاب میکنه این یه است که همه اهل دنیا طالب او هستند مگه اون معصومین علیه مسلم باشن و اون غیر معصومین که بذاری کنار هر کی میگه بنده هم هستن و هر کی یه دوهم داره یه ده دوست داره یه دو رفیل داره یه دو گردون داره یا ما اینو انتخاب میکنیم خب حالا چی شد؟ یه دو اون انتخاب کردن یه دو اون انتخاب کردن یه ده اون انتخاب کردن یه دو نتیجه چی شد؟ حالا خلاصه حالا درد ما دوا شد یا هر کی اطراف داره میکشه؟ اگر رو بگیریم کدومه؟ کجا دستور اکثریت داره تو آیه تو آیه ارز کردم مطالب قاطی نشه ها یه وقت از کردم یه انتخابی به دستور فقیهی از جهت مطاله روز دستور داده میشه او درسته اون به خود دستور فقیه میزان مطلبه به او کار نشته باشید میخوان ما باشیم و قرآن و روایت کجا تو روایت داره که انتخاب کنیم و اکثریت اگر رأی دادن رأی اکثریت رو بگیری که هم سکفتیم مثلا فرض بفرمین مثلا رز میکنم از ده هزار نفر برد بفرماید 500 و 500 هزار نفرشون 500 هزار یک نفر 500 هزار یک نفر یه طرف رعی دادن به یکی رعی دادن اون وقت 400 هزار به یکی دیگه رعی دادن نه این نرسته خب این آقا رو تحمیل کنیم بعد 699 هزار تای دیگه به چه برد؟ کی گفته اینو؟ کجای قرآن داره؟ کجای روایت داره؟ عبدا هم چی مطلبی نیست؟ اکثریت رو در نظر بگیرید و هر کدوم که رأی بیشتر رو گردن اونو انتخاب کنیم چیز دستوری نداریم ما بنابراین نه شرایط انتخاب کننده نه شرایط انتخاب شونده در هیچ آیه و روایتی نیست و قهرن این انتخاب به این جور و این منصب خواهون زیاد داره الا ماشا همون اجتماع چند نفری که اومدن انتخاب کنن عوی رو اون یکی داد زد نمنن امیر اون یکی داد زد نمنن مهاجرین گفتن ما مثلا چنین سبقت در اسلام داریم امیر باید از ما باشه انصار گفتن ما کمک رسول الله کردیم اگه ما نبودیم پیغمبر کارش نمیگرف از از ما باشه بزن بزن شروع شد در نفر مثلا جمع شده بودن خلیفه تعییم کنن بعدانم آدمان به اوچی مطلب و خب چی چی شد نتیجه مطلب غرض چی بود غرض از کردیم در اوائل بحثمون غرض این بود که ما اون هدف نبوت رو تحفظ کنیم هدف نبوت چی بود و اصل الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل اون الکتاب از میشه از لحکم و بینا ناصفی مختلف یکی از اهداف پیغمبرها رفع اختلاف این تازه اول دعوا و مرافع و اختلاف چی شد؟ و به چه مناسبت حالا طب... یکی یکی از کردم این یه چیزی نیست که مثلا بگیم اختلاف گاهی ممکنه اتفاق بزده. نه گاهی نیست همه طالب این منصبه همه دلشون بخواد رئیس باش آدم درست حسابی که خودش واقعا بلوشنان درک کنه که من لیاقت ندارم من صلاحیت ندارم من صرف نظر ای خیلی این بنده بهتر از همه اداره میکنه و قهران این اختلاف و این دعوا میشه و اون مطلوب ما کی حاصل میشه پس این اختلافی که بنا بنابود هدف دین باشه این اختلاف که اصلا با این شورا و با این انتخاب همون اختلاف و دعواست از اون شد اینا که داره واقعا اصلا یه جور عجیبی شد اما اول کار یک جوری شد دیگه بیچار واقعا ازم قدری متاثر میشه این مالک ابن نوغیره از مسلمان های خوب دنیا آمده بود خدمت رسول واسه واله واله و, سو و هرکت که ما تو بیابون زندگی میکنیم تو در زندگی میکنیم مثلا فرزو فرمه دستورات شما چیست و حضرتان فرمود نماز و روزه کنم هم چی و چی و چی و دوستی و بلایت و خلافت شایدان من دقیقا یادم نیست این علی. رفت. وقتی اومد دیدشی وقت باید چند وقتی که اومد دید عوی باید جزبه خلافه شده گفت این آقا رو چی نزد کرده گفت من که پیغمبر به من گفته بود بعد از من او چی شد گفتن بزنید بیرونش کنید هاز البوال علا عقبای اینی که روی پشت پاش شاش میکنه یعنی این شده رو بیرون کردن این آن وقتی میخواست از آن وقتی آمده بود خدمت رسول الله وقتی میخواست از مسجد بره بیرون رسول الله بعضها فرموده یه کسی بخواد یه فردی از افراد بهش اهل بهش رو نگاه کنه این رو نگاه کنه که به بشارت داده بود که از اهل بهش ده بیرونش کنیم بیرونش کردن به این مقدار که هیچ اهمیتی نداشت این مقدارش که خیلی اهمیت داشت بعدن شاید نمیدونم به سرکردگی خالد ابن یک جمعی رو فرستادن به عنوان اینی که اینا مرتت شدن همه رو کشت تمام قبیله بیچاره رو مرگشون رو کشتن زنشون از ما انتخاب میکنم دیگه, دیگه خاطر رو به بنابراین ما مقصودی که از هدفی که داشتیم از امام با انتخاب حل نمیشه ما میخواستیم دینمون رو اداره کنه مگه مردم صلاحیت دارن بفهمن که کی میتونه دین رو اداره کنه؟ مگه مردم این رو بفهمن؟ ما عمده مطلبمون این بود. ما یه رهبری میخواستیم که هم امر دینمون رو درست کنه هم امر دنیامون رو. حالا مردم میخوان رأی بدن، چه کسی رو رأی بدن و چه کسی رو انتخاب کنن که بتواند امر دینشون رو اداره کنه؟ اون که هیچ نمیتونند؟ هم رو دنیاشونم که خودمون دیدیم و میبینیم و در ممالک اسلامی و غیر اسلامی افرادی رو انتخاب میکنم با ازنم عوضی در میام کجاشو اداره میکنم؟ کجاشو میتونستم به مردم دفهمن؟ کجاشو میتونن دفهمن؟ مردم که صلاحیت برای این کار دارند و این کار رفع اشکال نمی‌کنه و مطلوب ما رو به دست نمیده بنابراین و این آ... آیه شریفه ابدا ناظر به این نیست که مشورت کنید و بعد از این که مشورت کردید رأی اکثریت رو بگیدان چیزی نمیگه آیه شریفه میگه کارشون رو با مشورت انجام میدن کسی ما ممکنه اتفاق بود چون امور امور کوچیکی یا امر کوچیکی رو مشورت میکنه آدم مطلب واضح میشه براش حق واضح و آشکار میشه در این صورت مطابقت کن وقتی واضح شد اما اگر واضح نشد و اختلاف واقع شد چه بکن؟ تو آیه که نداره روایتی هم راجی به این جهت نداریم اگه همه متفق شدند و راه رو به من نشون دادند و انتخاب کردم من راه واضح شد را کلو خوب حق رو درد کردم اما اگر اختلاف واقع شد؟ چه باید کرد؟ و نکته مهمی که در آیه شریفه هست این است که میبرمد به اینکه که ما رحمت من الله لنتله هم ما به رحمتی که از جانب خدا شامل حال تو شد و ای پیغمبر تو تونستی با این مردم با نرمی برخورد کنی ولو کنت فضن غلیز الغلب لنفذ زومن هولک اگر تو درشدی می‌کردی و تندی می‌کردی از اطراف تو پراکنده می‌شدند، کسی دنبالتو نمیومد ولو کنت فضن غلیز الغلب فسف انهم و لهم و شاورهم فی الامر فاذا تف فتوکل علی الله تو باید تصمیم گیرنده باشی رأی اونها چی نیست حق برای تو آشکار باشد و تو تصمیم گیرنده باش این اذا اعظم کردن میزان قرار داده برای مطلب که باید تصمیم گیرنده و اعظم کننده تو باشی ایزال اعظم کفا توکل عل الله و مکرر هم شاید البته الله یا مکرر یگه گاهی اتفاق افتاده که مشورت کرده رسول الله صلی الله علیه و آله علی مذهب اختلاف کردند به هیچ کدام شامل نکرده خودش یه چیزی رو انتخاب کرد یا شاید حتی اتفاق هم کرده بودن من الان یادم نیست که در صلح بیه که نوع مسلمونا اختلاف داشتن که سلح و دیویر رو به زیرن یا نه می گفتن نه ما صلح نمی کنیم و می بریم مکه رو فرض کنیم پیغمدار فرمود حالا مسلحت نیست و صلح رعی اونا رو ره کرد و سلح و دیویر امزا که بعدنم فهمینم پیغمدار درست گفته بنابراین مقصود عرض این است که ندارد که چه ضابطی باشه در صورت اختلاف پس چه ضابطی باشه در انتخاب کننده. چه ضابط و چه میزانی باشه در انتخاب شده و بعد از اینکه اختلاف واقع شد چه ضابطی باشه برای تشخیص مطلب و آیا این مطلوب ما با مشورت حاصل میشه یا نمیشه اینا جهات مختلف مطلبها مطلوب ما با مشورت حاصل میشه یا نمیشه این مطلوب ما جهت دینی و دنیایش رو هر دو رو میخوایم این با مشورت حاصل نمیشه او صلاحیت نداره مردم بفهمند که این آقا جنبه دینیش تا چه حده و چه مقدار صلاحیت دارد برای امردین و تحفظ بر امر دین بنابراین این کاری نیست که با مشورت درست بشه و از کننده و تصمیم گیرنده دیگری است پس در حقیقت شاید شاید از میکنم بشود اینجور گفت که این دستور مشورت بعد از فراق از قضیه حکومته یک نفر تصمیم گیرنده باید در رأس حکومت باشه در امورات باید مشورت بکنن اگه رعی ها متفق بود و راه واضح شد و روشن شد که خیلی خوب اگر رعی مختلف شد فعضا ازمتف و توکر اگر تو با تصمیم بگیری اونا اختلاف کردن ولشون کن به کارشون پس در حقیقت باید بگیم مشورت بعد از فراغ از قضیه حکومت است یعنی حکومتی رو مفروغ اند یعنی نافذ الامر و ولایی رو فرض کرده در مثلا اون وقت میگه در کارها مشورت بکن و تصمیم گیری با تو پس نتیجتا این آیه شریفه و امثال این آیه شریف آیه شریف دو تا راجع به مشورت بیشتر در قرآن موجود نیست ولی روایات مشورت زیاده ولی علاکلهال به درد ما میگه مشورت بکن تو کارات یک کاری که برات مبهمه مشورت کن بذار واضح بشه و برو واضح بشه و برو و این مطلب ما واضح بشونی مطلب خلافت و امامت و سرپرستی حوزه اسلام واضح بشه که واضح واضح پیش تمام مسلمانای عالم واضح بشه که این آقا فقط صلاحیت دارد برای این کار و اهدی دیگری ندارد واضح شدن نیست این, این, این واضحش فقط خدا باید معین کنه خدای تعالی معین کرده و واضح هم کرده و مطلب واضحه و اما فعض ازمی شد به اینکه و شاورهم هم فل امر و امرو هم شورا بین هم کاری در این مسئله از پیش نیست. سلّم الله و محمد.